داستان نیلس و قولها تو روزگارای قدیم توی ناحیه بیابونی خشک و بی‌آب و علف جایی که هیچ درختی رشد کرد و همه جا پوشیده از شن بود و بادهای شدیدی هم می وزید، زن و شوهری همراه با دو پسر خودشون تو خونه کوچیکشون زندگی می‌کردن اونها تا گوسفند داشتند. که هر روز دو تا پسراشون که اسم اونها رازموس و نیلس بود گوسفنده رو برای چراب مرتع بردن برادر بزرگتر با علاقه خیلی زیاد از گوزفنده نگهداری میکرد اما برادر کوچکتر که اسمش نیلس بود علاقهی به این کار نداشت و دوست داشت که شکارچی بشه اون تا زمانی که تفنگ نداشت و تیراندازی بلد نبود خیلی ناراحت بود ولی بالاخره صاحب یه تفنگ قدیمی سرپر شد و اونقدر باهاش تمرین تیراندازی کرد که توی اون کار مهارت زیادی به دست آورد. حالا دیگه مهارتش توی تیراندازی به قدری بود که زبانزد اهالی محل بود. اگه تو گذشته مردمون روی جوون دست و پا میدونستن حالا دیگه عقیدهشون نسبت به این پسر عوض شده بود. پدر و مادر رازموس و نیز کاتولیک های بسیار معتقدی بودند. وقتی که پاپ سن گذاشتن، زن تصمیم گرفت که پیش پاپ تو شهر روم بره و اون رو از نزدیک ببینه. بقیه اعضای خونواده به این کار هیچ رقبتی نداشتن، اما اون تصمیمش رو گرفته بود و به هیچ قیمتی هم حاضر نبود که از این مسافرت چشم پوشی کنه. به خاطر همین اونا مجبور شدن گوسفنداشون رو بفروشن، یه آزوغهی برای راهشون تهیه کنن، بعدم در خونهشون رو قفل کردند و پیاده راهی روم شدن. نیلس توی این سفر تفنگش رو هم همراه خودش برداشت. رازموس گفت، مگه وسیله سفر کم داریم که میخوای تفنگت رو هم با خودت بیاری؟ اما نیلس مایل نبود که حتی یه لحظه هم از تفنگش جدا بشه. و با وجود مخالفت پدر و مادرش، توفنگش را هم با خودش آورد. سفر اونها توی نیمه تابستون با سختی های زیادی همراه بود. موقع زور هوا به قدری گرم می که امکان ادامه راه نبود. وقتی هم که هوا تاریک می به خاطر ترس از حمله راهزنا یا گم کردن راهشون مجبور بودن که توقف کنن. خلاصه، یه روز قبل از غروب آفتاب به یه مهمون خونه رسیدن که تو حاشیه جنگل بود. رازموس گفت: بهتر شب و تو همین مهمونخونه خونه استراحت کنیم. نیلس گفت: «عجب حرفی میزنی روزها رو که به خاطر گرمای هوا نمیتونیم به راهمون ادامه بدیم. شبام که هر جا می رسیم، مجبوریم که اتراخ کنیم اگه اینجوری پیش بریم صد سال دیگه هم به مقصد نمیرسیم. ولی رازموس، مایل به ادامه راه تو شب نبود اما پدر و مادر پیرش و نیلس گفتن شبا هوا خیلی هم تاریخ نیست به علاوه نور ماه هم تا حدی هوا رو روشن میکنه به نظرم میتونیم از صاحب مهمون خونه بپرسیم که از کدوم راه بریم بهتره بنابراین اونا به راهشون ادامه دادن بالاخره به یه دوراهی رسیدن هیچ علامت و نشونه ای نبود که مسیر رو بهشون نشون بده. رازموس گفت: حالا باید چیکار کنیم؟ کاش شب تو همون مهمونخونه می‌موندیم. نیلس جواب داد: نگران نباش، هیچ اتفاقی نمی‌افته. هوا گرمه و می‌تونیم شب رو تا روشن شدن هوا همینجا استراحت کنیم. یکی از ما نگهبونی بده، بقیه‌ام بخوابن و استراحت کنن. نگهبونی نوبت اول با رازموس بود. جنگل خیلی آروم بود و رازموس صدای روباها و گوزنا و سایر حیوونا رو که تو اون حوالی پرسه می زدم می شنید. بعد از بالا اومدن ماه، هوا تقریبا روشن شده بود. رازموس یک گوزن رو دید و بلافاصله فاصله توفنگ نیلس رو برداشت و به طرفش شلیک کرد. نیلس با صدای شنیدن توفنگش از خواب پرید و گفت چه خبر شده، چه اتفاقی افتاده؟ رازموس بادی به قبقب بندخت و گفت من یک گوزن شکار کردم نیلسم جواب داد اینکه کاری نداره من بارها و بارها پرستوها رو در حال پرواز شکار کردم نیم شب شد و نوبت نیلس بود که نگه نگهبانی بده برادرش هم رفت که بخوابه هوا کم کم رو به سردی میرفت نیلس مجبور شد راه بره تا خودش رو گرم کنه همینطور که دور اطراف جنگل گشت و گذار می کرد متوجه شد که به حاشیه جنگل رسیده نیلس تصمیم گرفت از یکی از درختهای حاشیه جنگل بالا بره بعد هم متوجه یه محوتهٔ بازی شد یکم دورتر از اون قسمت متوجه یه آتیش روشن شد که ستا قول دور اون آتیش نشسته بودند و مشغول غذا خوردن بودن. اونها اینقدر درشت اندام بودن که قاشقهاشون اندازه یه بیل بود و چنگالهاشون هم به اندازه شنکش. اونها با همون قاشق چنگالای بزرگ و حجیم خودشون مشغول خوردن تکه های کباب بریان بودن. نیز خیلی وحشت کرده بود. اما بعدا پیش خودش فکر کرد که اگه اونها نزدیک بیان، میتونه پشت بوته ها مخفی بشه. بعدم کم, کم ترسش از بین رفت و تصمیم گرفت تفنگش رو برداره و سر به سر قولها بذاره. نیلس جای پای خودش رو محکم کرد و تفنگش رو به طرف قولها نشونه گرفت. وقتی یکی از قولها در حال برداشتن یه تیکه گوشت بزرگ بود، نیلس به طرف شلی کرد. گلوله درست به دسته چنگالش برخورد کرد و نوک چنگال توی چونه یه فرو رفت. قول خیلی عصبانی شده بود. به دوستاش گفت هیچ از این جوش شوخیا خوشم نمیاد. چرا چنگال منو شکستین؟ یکی از قورها جواب داد من که دست به چنگال تو نزدم. راستش من اصلا حوصله دعوا کردن با تو رو ندارم. خواهش میکنم سر به سرمو بعدش هم قور گفت من دروغ میگم فکر میکنید من عمدن چنگال خودم رو تو چونم فرو کردم؟ خلاصه بین دو قول که سر این موضوع خیلی عصبانی شده بودن مبارزه تن به تن شروع شد. قول سوم سعیم کرد که اونها رو آشتی بده. دوباره هر ستا مشغول خوردن غذا شدن. همون موقع جر و بحث بینشون ادامه داشت. نیلز تصمیم گرفت گلوله دوم رو هم شلیک کنه. گلوله دوم رو توی تفنگش گذاشت و درست همون لحظه ای که گل دوم میخواست چنگال رو توی دهنش بذاره شلیک کرد. بنگ! و چنگال توی دست گل دوم تیکه تیکه شد. گل دوم اصابانی از گل اول شد. کم کم دیگه کار داشت به جاهای باریک میکشید که گل سوم پادرمیونی میونی کرد و گفت اینقدر احمق نباشید. چرا باید با هم دیگه در بیفتیم وقتی میتونیم هر ستامون با هم باشیم و به پادشاه این سرزمین قلبه کنیم. هرچند این کار خیلی سخته. اما اگه بین خودمون هم اختلاف داشته باشیم دیگه هرگز موفق نمیشیم. حالا بیایید بشینیم قضام رو تموم کنیم. منم درست بین شما دوتا میشینم تا تقصیر رو به گردن همدیگه دیگه نندازید. هرچند نیلز حرفهایی رو که بین ها رد و بدل می‌شد نمیشنید اما با دیدن حرکت دست اونها میتونست حس بزنه که چه اتفاقی بینشون افتاده. و دلش به همشون میخندید. نیلس با خودش گفت اگه هر ستای اینها با همدیگه در بیافتن خیلی عالی میشه. بهتر گلوله سوم رو هم شلیک کنم. این بار چنگال قول سوم بود که به خاطر اصابت گولله نیلس از وسط نصف شد. قول سوم رو کرد به و گفت اگه من هم مثل شما دو نفر احمق بودم اون وقت عصبانی می شدم. درگیر می شدم. اما من می خوام بدونم این وقت شب کیه که داره سر به سر ما می زاره؟ دو تا قول گوله ثبوم دوتا گول دیگر رو به فکر فرو برد. نیلس هم به سرعت از درخت پایین اومد تا خودش رو پشت بوته ها مخفی کنه. نیلز تازه از درخت پایین اومده بود که گولو بالای سر خودش دید. اول فریاد زد از سر جا تکون نخور. وگرنه تو رو زیر پاهم له میکنم. نیلس مجبور شد که خودش رو تسلیم کنه و قول هم اون رو پیش دوستای خودش برد. غولی که نیلس رو اسیر کرده بود گفت کشتن تو کاری برای ما نداره. اما از اونجایی که تیرانداز ماهری هستی شاید به دردمون بخوری کمی دورتر از اینجا یه قصر هست که دختر پادشاه اونجا زندگی میکنه. ما هم در حال جنگ با اون پادشاهیم و میخواییم هر طور شده دخترش رو بدزدیم تا پادشاه در برابر خواسته های ما تسلیم بشه. اما این قصر به شدت تحت مراقبته و نفوز ما به داخل اون قصر کار خیلی سختیه. ما بارها و بارها به کمک نیروی جادویی خودمون تونستیم هر موجود زندگی رو که توی قصد زندگی میکنه خواب کنیم. اما فقط یه سگ سیاه هست که نیروی جادویی ما روش هیچ اثری نداره. و به خاطر همین تا حالا نتونستیم کاری از پیش ببریم. هر وقت خواستیم از دیوارای قصد بالا بریم اون سگ متوجه شده و با پارسی اردنهاش دوباره همه رو بیدار کرده. حالا تو میتونی با گلوله سگر رو بکشی تا ما از دستش خلاص بشیم اگه این لطف رو در حق ما بکنی پاداش خوبی در انتظارته نیلس بیچاره چاره ای جز قبول این پیشنهاد نداشت و بالاخره همراه قولها به سمت قصر حرکت کرد دور تا دور دیوارای قصر توسط نگهبونا محافظت می شد. نیلس به قولها گفت حالا من چجوری میتونم خودم رو بالای یکی از دیوارهای قصر برسونم و اونجا کمین کنم؟ قول سوم جواب داد: این که کاری نداره. من از روی زمین بلندت میکنم و تو رو درست بالای اون دیوار میذارم. نیلس گفت: نه نه نه، خیلی ممنون. ممکنه از بالای دیوار پایین بیفتم و دست و پام بشکنه. اون وقت یه کسی نیست که به طرف اون سگه تیر تیراندازی کنه و اون رو بکشه؟ قول دوباره جواب داد: نه ترس بالای اون دیوار انقدر عریضه که مطمئن باش پایین نمیافتی. نیرز قوّت قلب پیدا کرد و به قول اجازه داد که اون رو بالای دیوار قصد پرتاب کنه. خلاصه به سلامت بالای اون دیوار فرود اومد. اما سگ صدای اون رو شنید و خواست دهنش رو باز کنه و پارس کنه. نیلس با شلی که یه غروره اون رو نقش زمین کرد. بعد از اینکه سگ کشته شد، قول نیلس رو صدا زد و گفت حالا از بالای دیوار بیا پایین و ببین میتونی دروازه رو باز کنی نیلس از بالای دیوار پایین اومد و بعد از گذشتن از حیات قصر متوجه یه ورودی بزرگ شد که به تالار قصر منتهی میشه در بود و تالار زیر نور چراقها مثل روز میدرخشید نیلس وارد تالار شد دورورش رو نگاه کرد روی دیوار یه شمشیر بدون غلاف دید زیر نور اون شمشیر یه ظرف نقره‌ای بود. وقتی نیلس کندکاری های روی ظرف رو نگاه میکرد متوجه یه نوشته شد. هررکز از شربت گوارای من بنوشد، میتواند به کمک این شمشیر سلطه و قدرت خود را نشان دهد. باشد که صاحب این شمشیر آن را در راه درست به کار ببرد و صاحب عشق شاهزاد خانم بشود. همون موقع در پوش ظرف رو برداشت و یه مقدار از شربت توی ظرف رو خورد. اما وقتی خواست شمشیر رو از روی دیوار برداره، نتونست اون رو از سر جاش حرکت بده. به خاطر همین، دوباره ظرف رو سر جای خودش گذاشت. و همینطور که توی قصد رستجومی کرد، با خودش گفت، بهتر قورهای کم منتظر باشن. وقتی وارد یکی از اتاقای قصد شد، شاهزاده خانومی رو دید که روی تخت به خواب سنگینی فرو رفته روی میزی که کنار تخت بود یه دستمال گلدوزی شده قرار داشت نیلس دستمال رو از وسط پاره کرد و نیمی از اون رو توی جیبش گذاشت و نیم دیگر رو روی میز گذاشت کف اتاق یه جفت دمپایی زردوزی شده دید یه رنگی اون رو هم برداشت و داخل جیبش گذاشت دوباره به تالار قصب برگشت و سراغ ظرف شربت رفت و با خودش گفت اگه همه یه شربت توی ظرف رو بخورم شاید بتونم اون شمشیر رو از روی دیوار بردارم به خاطر همین همه یه شربت رو سرکشید. وقتی که دست به شمشیر زد براحتی تونست اون رو برداره با همون لحظه احساس کرد نیروی خار و ای توی رکهاش دمیده حتی احساس کرد میتونه با هم بجنگه قول‌ها همچنان پشت دروازه منتظر بودند. هم تو این فکر بود که از شمشیر استفاده کنه و اونها رو بکشه. اما اون به عنوان فرزند یک چوپان فقیر، امید این رو نداشت که بتونه دل شاهزاده خانم رو به دست بیاره. وقتی نیلس دم دروازه قصر اومد، اونجا یه در بزرگ و یه در کوچیک دید. نیلس در کوچیک رو باز کرد تا قول‌ها وارد بشن. اما گولها گفتن چرا در بزرگ رو باز نکردی ما که نمیتونیم از این در کوچیک رد بشیم. نیلس هم جواب داد چفت آهنی در بزرگ خیلی سنگینه من نمیتونم رو باز کنم. اگه سرتون رو یکم خم کنید میتونید از در کوچیک وارد بشید. گوله اول سرش رو خم کرد و وارد شد. اما هنوز بدنش رو راست نکرده بود که نیلس با یه ضربه شمشیر سرش رو از تنش جدا کرد. نیلسان به راحتی تونست جسد بیجون جون قول رو کنار بکشه چون به خاطر خوردن اون شربت نیروی بدنی خارق العاده به دست آورده بود قول دوم هم به همون سرنوشت دچار شد اما قول سوم یکم تردید از خودش نشون داد نیلس صداش زد و گفت عجل کن مثل اینکه تو پیرتر از دوستاتی و خیلی کند کار میکنی. من نمیتونم خیلی منتظر باشم باید هر چه زودتر پیش دوستان برگردم به خاطر همین مول سوم هم وارد شد و با یه ضربه شمشیر سرش از بدنش جدا شد. کم کم دیگه هوا روشن شده بود. نیلز پیش خودش فکر کرد که الان پدر و مادر و برادرش دارن دنبالش می گردن و بدون اینکه منتظر باشه و ببینه که چه اتفاقی توی قصر افتاده بلافاصله همراه شمشیرش به سمت جنگل دوید. وقتی به طرف جنگل دوید و پیش پدر و مادرش رسید خونوادش هنوز خواب بودن. نیلز اونها رو از خواب بیدار کرد. اما درباره ماجرای شب قبل هیچ حرفی بهشون نزد. اما وقتی اونها درباره شمشیر سوال کردن به سمت قصر اشاره کرد و گفت از اونجا پیدا کردم و اونها با این تصور که اون رو پیدا کرده دیگه بهش چیزی نگفتن. وقتی نیلز از قصر خارج شده بود و به سمت جنگل میرفت در رو پشت سر خودش انقدر محکم بسته بود که دربون قصر از خواب بیدار شده بود. دربون قصر وقتی دم دروازه قصر با جسد سه ستاقول روبرو شد نمیدونست که چه اتفاقی افتاده. همه ی ساکنای قصر از دیدن این صحنه تعجب کرده بودن. اونا خیلی خوب میدونستن که این ستاقول از قدیمیترین دشمنای پادشاه هن. اما اینکه چه جوری به این روز افتاده بودن هیچکس هیچی نمیدونست هنوز مدتی از این قضیه نگذشته بود که همه اهالی قص متوجه شدند که ظرف شربت خالیه و شمشیر هم سرقت شده تازه شاهزاد خانوم هم از اینکه دستمالش دو نیم شده بود و یه لنگهای هم گم شده بود خبردار بود حالا دیگه ماجرای کشته شدن غولها تا حدی روشن شده بود اما این مسئله که چه کسی این کار رو انجام داده به صورت یه معما باقی مونده بود پادشاه پیر که عهدهدار همه امور قصر بود پیش خودش فکر کرد که این کار حتما کاری شوالیهی جوونه که دیر یا زود میاد تا از دخترش کاری کنه پیشبینیش تا یه حدی منطقی بود اما هیچکس خبر نداشت که اون شوالیه چه کسی میتونه باشه شاهزاده خانوم گفت ما باید اون رو پیدا کنیم چون اگه قصد ازدواج با منو داره باید به احترام و اعتبار اون نوشته روی ظرف شربت که دست خط پدرمه این درخواست رو قبول کنم به خاطر همین شاهزاده خانوم با عالی ترین مشاورای پدرش مشورت کرد تا درباره این موضوع ازشون نظرخواهی کنه یکی از پیشنهاداتی که تو این جلسه مطرح کردن این بود که از شاهزاده خانوم درخواست کردند تا در کنار جاده اصلی خونه بسازه و سردر اون خونه این جمله رو بنیسه. هرکس داستان زندگیش رو بازگو کنه میتونه به مدت سه شبانه روز و به طور رایگان توی این خونه اقامت کنه. خونه ساخته شد. افراد زیادی پیش شاهزاده خانم مادند و داستان های عجیب براش نقل کردند. اما از بین همه این افراد یکی نبود که در مورد اون گول صحبت بکنه. نینس و خونوادهش تو راه روم بودن پاییز تموم شد و زمستون از راه رسید وقتی اونها پایی کوه بلند رسیدن گفتن اگه قرار باشه از این کوه عبور کنیم از یخ میزنیم نیلس گفت نگاه کنید یه نفر داره به طرفمون میاد بهتر از اون راه روم رو بپرسیم وقتی ازش سوال کردن فهمیدن که راه دیگهی وجود نداره اونها دوباره از مرد غریبه پرسیدن. تاروم راه زیادی در پیش داریم؟ اون مرد پاشو بلند کرد و زیر کفشش رو به اونها نشون داد و گفت وقتی من از روم حرکت کردم این کفش نو بودن. اما حالا کفشون ساویده شده و به نازکی یه برق کاغذه. حالا خودتون میتونین حدس بزنین که تاروم چقدر دیگه راه مونده؟ حرفهای اون مرد نیمس و خانوادش رو از ادامه سفر دل سرد کرد. مجبور شدن از همون رای که اومده بودن برگردن. تو اون هوای سرد و جاده پوشیده از برف آخرش دوباره به همون جنگل رسیده بودن که یه شب رو اونجا سپری کرده بودن. رازموس به محض مشاهده خونهی که تو هاشیه جنگل بود گفت نگاه کنید این خونه به تازگی ساخته شده. قبلا اینجا خونه ای نبود. نیمس هم گفت بهتر شب رو تو همین خونه اقامت کنیم. پیرمرد گفت حتما کرایش خیلی گرونه. اما وقتی که نوشتهی سردر خونه رو دیدن خیلی خوشحال شدن. فهمیدن که میتونن بدون کرایه شب رو اونجا اقامت کنن. بعد از اینکه اونها استراحت کردن، خدمتکار شاهزاده خانم پیش اونها اومد تا داستان زندگیشون رو بشنوه. اون گفت حتما نوشته سردر خونه رو خوندید. حالا با خیال راحت ماجرا و داستان زندگیتون رو بر من تعریف کنید. پیرمرد مرد گفت من حرفی برای گفتن ندارم. به علاوه اگه این دو پسرم همراه ما نبودن شاید هرگز هم من مزاهمتون نمی خدمتکارم جواب داد اصلا حرفش رو نزنید. اینجا مثل خونه خودتونه. فقط میخوام از زندگیتون برام تعریف کنید. پیرمرد گفت. خب من و همسرم تموم زندگیمون توی ناهیه خشک و بیابونی سپری کردیم. تا اینکه سالها پیش تصمیم گرفتیم که به روم سفر کنیم. همراه این دوتا پسرمون هم راه سفر روم رو در پیش گرفتیم. اما قبل از این که به اونجا برسیم مجبور شدیم از نیمه راه برگردیم. داستان زندگی من همینه که خدمتتون عرض کنم. این دوتا پسرم هم در تمام طول زندگیشون کنار من زندگی کردن. فکر کردن. میکنم اونها هم حرفی برای گفتن نداشته باشن. رازموس گفت اما یه چیزی هست که من باید بگم. تو مسیرمون به راه روم یه شب تو همین جنگل خوابیدیم. من یه گوزش شکار کردم. خدمتکار که به شنیدن موضوعات ساده و پیش و پا افتاده توسط کسایی که تو این خونه اقامت کرده بودن عادت کرده بود، بعد از شنیدن داستان زندگی این خانواده، پیش شاهزاده خانم رفت و گفت: اونا هم حرف مهمی برای گفتن نداشتن. شاهزاده خانم ازش پرسید: آیا تو از تک تک اعضای خانواده درباره ماجرای زندگیشون سوال کردی؟ خدمتکار جواب داد: نه، از همهشون سوال نکردم. چون پدرشون گفت که اعضای خانواده‌اش هم حرفی برای گفتن ندارن. شاهزاده خانم در جواب خدمتکار گفت: تو بی احتیاطی کردی. بهتر خودم شخصم پیش اونها برم. نیلس به محض اینکه شاهزاده خانم وارد اتاق شد اون رو شناخت. و پیش خودش فکر کرد که حتماً عمدن اونها رو به این خونه کشوندن تا سارق اون شمشیر و لنگه گم شده‌ی دمپایی و نیمه گم دستمال رو پیدا کنن و در صورت برملا شدن موضوع مجازات سختی در انتظارشون خواهد بود. به خاطر همین نیلس داستان زندگیش رو بدون اینکه به این موضوع اشاره کنه برای شاهزاده خانم تعریف کرد. اما همون لحظه رازموس به برادرش گفت اما تو یه چیزی رو فراموش کردی بگی همون شبی که من گوز شکار کردم تو هم یه شمشیر پیدا کردی شاهزاده خانم فوری از اون پرسید اون شمشیر کجاست؟ خدمتکار گفت من از محل اون شمشیر خبر دارم وقتی اونها وارد اتاق شدند، دیدم که اون پسر شمشیر رو گذاشت بیرون از در قصر و خدمتکار بلافاصله رفت و شمشیر رو آورد نیل سه دلش گفت وای دیگه کارم تمومه شخصاد خانوم بعد از دیدن شمشیر ازش پرسید بگو ببینم این شمشیر چجوری به دست تو افتاده نیل سکوت کرد و از اینکه به خاطر دوزی از قصر رو اتاق خواب دختر پادشاه به مجازات مرگ محکوم بشه مثل بید می درزید خانوم به خدمت کارش گفت ببین این جوون چه چیزایی دیگه همراه خودش داره. از توی جیب نینس لنگه دمپایی رو بیرون آوردن و از توی جیب دیگهش نیمه دستمال شاهزاده خانم. شاهزاده خانم گفت همین چیزایی که کشف شدم به عنوان مدرک و سند کافیه. هرچی زودتر به پدرم خبر بدید. نینس التماس کنان گفت منو ببخشید. من در حق شما بدی کردم. اما به همون اندازه هم در حقتون خوبی کردم. شاخصاد خانم جواب داد تو که در حق ما بدی نکردی بهتر همینجا بمونی تا پدرم از راه برسه. لحن ملایم شاخصاد خانم و اینکه موقع حرف زدن با اون لبخند بر چهره داشت نیلس رو امیدوار کرد که در مجموع کار بدی انجام نداده. بلاوه وقتی اون به یاد نوشته های روی ظرف شربت افتاد مخصوصا اون جمله آخر نیلس به عالم خیال خودش فرو رفت. بعد از رسیدن پادشاه، همه ماجرا روشن شد. و شاخصاد خانوم آمادگی خودش رو برای ازدواج کردن با نیلس اعلام کرد. یکی دو روز بعد مراسم ازدواج برگزار شد. نیلس لقب کنت گرفت. زمانی که لباسهای شاهانه رو به می کرد، شکل و شماریل یک کنت واقعی رو پیدا کرده بود. مدتی بعد هم پادشاه پیر از دنیا رفت. موقع ودایش گفت نیلس باید جانشین اون باشه. اما اینکه آیا پدر و مادر نیلس پیش اون موندن یا اینکه به زادگاه خودشون برگشتن و یا اینکه سوار بر کالسکه شدن و به روم رفتن چیزیه که مورخا دربارش هیچ چی ننوشتن. کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me/mehrandousti t.me/mehrandousti نشانی وبلاگم a m e h r a s t مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد استانی